بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداونده به اندازه مهربان نهایت بارش میم اینها آیات کتابی با حکمت است هدایت و رحمت است برای نیکوکاران آنانی که نماز را به تمام و کمال برپا می دارند و زکات می دهند و به آخرت یقین دارند هم ای بر هدایت راستین از جانب پروردگارشان و هم ای درستگاه رستگار و از مردم کسی هست که سخنان بیهوده را می خرد تا با بیدانیشی مردم را از راه خدا بازدارد و آن را به تمسخور گیرد چنین مردمی به عذاب بیرس با کننده گرفتار می شود سون بروی آیات ما خوانده شود تکبر کنان روی برمی گرداند که گوی آن را نشنیدد گوی در های او کریست پس او را به در دردناکی مجده بده بگمان آنانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند برای ایشان باغهای سفشار از نعمت هاست. در آن جودانه و سر میبرند وعده خداوند حق است و او صاحب قدرت منی و با حکمت است آزمان ها را بدون پایه که دیده بتوانید آفرید و بر زمین ها را قرار داد تا شما را نجنباند و در زمین از هر جانور پراغنده ساخت و از آسمان آب فرود آوردیم، و این ترتیب در زمین از هر جوره از روی سودمند رویانی دیم. این شنین است آفرینش خدا پس به من نشان دهید کسانی که جزوی مورد نیایش قرار گرفتند چه چی چیز را آفریده بلکه ستمگاران مشرک در گمراهی آشکار بیگمان با لکمان حکمت دادیم و گفتیم که خدا را سپاس گذار و کسی که سپاس گذاری کند سود خود سپاس گذاری می کند و کسی که ناسپاسی کند پس حقا که خداوند بینیاز و ستوده است به یاد آور هنگام را که لقمان با پسر خود در حالی که او را پند می داد گفت ای پسر من؟ به خدا شریک میاور بیگمان شرک ستم بزرگ است و انسان را به اطاعت پدر و مادرش سفارش کردیم مادرش او را در سستی و ناتوانی به سستی و ناتوانی دیگر برداشت و جدا کردن او از شیر دو سال است به اینکه مرا و مادر و پدر خود را شکر گویی و سوی من است بازگشت و اگر پدر و مادرت تو را بر این وادارند که به من شریک بیاوری چیزی را که خود آن را نمیدانی از ایشان پیروی مکن ولی با ایشان در این دنیا به وجه پسندیده مصاحبت کن و راه کسی را پیروی کن که به سوی من رو می آورد. سپس بازگشت شما به سوی من است و من شما را به کنه آنچه می کردید آگاه می گردانم. ای پسرک من اگر خصلتی که انجام می‌دهی به اندازه دانه از خردلی باشد و بر سر لاخ کوهی یا بر فراز آسمانها یا در قعر زمین قرار داشته باشد خداوند آن را می آورد حقا که خداوند به امور دقیق و پنهان آگاهو با خبر است ای پسرک من نماز را به تمام و کمال ادا کن به کارهای پسندیده امر کن و از کارهای ناشایسته منع کن و با مصیبتی که با تو می رسد شکیبا باش بیگمان اینها از کارهای مهم است با تکبر روی خود را از مردم مگردان و در زمین با ناز و نخوت مرو بیگمان خداوند هیچ نازفروش خودستایی را دوست ندارد در روش خود میان رو باش و از بلندی آواز خود بکار واقعا زشترین آوازها آواز است. آیا ندیدید که خدا برای شما همه چیزهایی را که در آسمانها و در زمین است رام ساخت که به معرض استفاده شما قرار دارد و نعمتهای خود را به گونه آشکارا و پنهان بر شما و تمام کرد و با این هم از مردم کسی است که بدون دانش و بدون آن که کتاب روشنایی بخشی به دست داشته باشد در مورد خدا مجادله می کند چون با ایشان گفته شود آنچه را خدا نازل کرده پیروی کنید میگویند بلکه چیزی را پیروی میکنیم که پدران خود را بر آن یافتیم حتی اگر شیطان پدرانشان را به عذاب شعله ور یعنی دو را می خاند باز هم اینها از پدران خود پیروی می و هر کسی که خود را به خدا تسلیم کرد و او نیکوکار بود بیگمان به دستگیره محکم چند زده است و عاقبت همه کارها به سوی خداست و هر کی کافر شد پس کفر او تو را اندوهگین نسازد بازگشت ایشان به سوی ماست پس ما ایشان را به حقیقت آنچه میکردند آگاه می‌گردانیم. بیگمان خدا وند به همه آنچه در سینه ها است آگاه می باشد کمی ایشان را از های خیش بهرمن می سازیم باز ایشان را به تحمل عذاب سخت ناچار می سازیم و اگر از ایشان بپرسی کیست که آسمانها و زمین را آفرید یقینا می خدا بگو همه ستایش از آن خداست اما اکثر ایشان نمی دانند آنچه در آسمانها و زمین است از آن خداست بیگمان خداوند بینیاز و ستوده است و اگر هرچی در زمین از درخت یافت شود همه قلم شوند و دریا را پس از آن هفت دریای دیگر افزایش دهد و با این قلم و این مرکب کلمات خدا نوشته شود باز هم سخنان خدا با پایان نمی رسد حقا که خدا صاحب قدرت منعی و با حکمت است آفریدن شما و با زندگر دوباره شما نیست مگر مانند آفریدن یک شخص بیگمان خداوند شنوا و بیناست آیا ندیدی که خدا شب را در روز داخل می و روز را در شب داخل می کند و آفتاب و ماه را رام ساخته است هر کدام مسیر خود را تا مدت معینی می و این که خداوند و آنچه می‌کنید کنید آگاست این به سبب آن است که بگمان خداوند هم اوست حق بگمان جز او هرچی را نیایش میکنند باطل است و بیگمان خداوند هم اوست بلند مرتبه و بزرگ آیا ندیدی که کشتی در دریا و فضل خداوند می رود تا با شما نشانه های قدرت او را نشان بدهد؟ بیگمان در این برای هر شکی باید سپاسکزار نشانه است بر قدرت و علم خداوند و هنگامی که ایشان را موجه همچون سایبانهای های بپوشاند خدا را می و با اخلاص کامل او را عبادت می کنند. اما همین که ایشان را به خشکن نجات داد پس صرف برخی از ایشان به اعتدال می مانند و نشانه ما را تکذیب نمی کند مگر هر عهد شکنی ناسپاسی ای مردم از پروردگار خیش بترسید و از روزی بترسید که در آن هیچ پدری نمیتواند از جای فرزندش گناه او را به دوش بگیرد و نفرزندی می تواند از جای پدرش گناه او را به دوش بگیرد حقا که و خداوند حق است پس شما را زندگی دنیا فریب ندهد و نیز فریبنده یعنی شیطان شما را در مورد خداوند هرگز فریب ندهد بیگمان علم بکیامت خاص به نزد خداوند می باشد او باران را نازل می کند و آنچه را در رحم هاست می داند و هیچ کس نمی داند که فردا چی می کند. و هیچ کسی نمی داند که در کدام سرزمین می میرد که خداوند دانا و آگاست